الرجيم. بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین و الله علی سیدنا رسول الله و آله طیبین الطاهرین المعصومین و اللعت الدائمت و علی اجمعین اللهم افرنا جمعی المختلفین و رحمنا برحمت که یا رحمه رحمین احس کنم بنا شد که به مناسبت بحث قیبت هم رو بخونیم که جنبه های اخلالی و جنبه های تأکید بر فرمت قیبت رو ببینیم و هم بحث های فنی که نکات فنی که داره متعرض بشیم انشاءالله تعالی حریص شماره چهل و دو از کتاب اخلاق عرض این کتاب به نام آداب و مکارون الاخلاق در اختیار مرحوم مسترک شده و مستدرک میگه در اختیار مرهوم صاحب ریاض العلمان مرهوم افندی در اختیار ایشون هم بوده اما خود ایشون میگه کتاب من ناقصه نمیدونم به نظرم بیاد چها چپ شده باشم اون دوسته چاپ شده قال علیان علیه السلام من کتاب مؤمنم این هم جزوی روایتیست که منصوب برمینم فعلا در مسادر ما نیست البته اجمالا شما نگفتن واسه ولید بحث اول القاسم بشه اول قاسم کوفی همون که مرحوم شیخ هم داره شیخ کمتر داره اینجا داره canon مخلثه انصافا مخلته. یعنی ببینید شما همین حدیث شماره چل یک و 40 رو مقایسه بکنید این اینکه یک حدیثه ایشو ورداشه خراب کرده حدیث مخلت به این اون دقت و ظرافت در متن رو نداره شما مثلا متن بله. کافی رو با متن اصن صدوق مقابل بکنیم اینی خرابی نکرده اما ایشان متأسفانه مصر رو خراب به هر حال اول قاسم کوفی موضافا به اینکه ایشان چیزهای دیگه هم نسبت داده شده ادعای نصب کرده که سید و سید نبوده و الی قال علی علیه السلام من خطاب مؤمنا حالا این در اینجا کلمه مؤمن آمده در بعض از روات هم بوده بعضی هم تصریح به شیعه شده لكن انصافا روات سند اعتبار شلدی نداشت خبسه هولفیتینه خBAL سالسینه خریف. خریف اینی پاییز در لغت عرب. در لغت عرب هم بهار یعنی رادی و هم خریف کنایه از ساله. هر دوش معنای فصل نیستن. هستن استعمال میشه خریف. لکه مثلا مذا علیه سالسینه خریف یعنی سی سال. اینجا سالسینه خریف یعنی سی سال. و توضیحاتش هم از کردیم چون در اول بهار. و در اول پاییز شب روز اعتدال خریفی چون شب روز میشه که همه اول پاییز ما هم بود اول مه شب روز مساوی میشه اول بهار هم اول فروردین شب روز مساویه این دوتا رو مبدا احتساب سال میدونن اعتدال رو مبدا احتساب سال میدونن لذا بعضیشون از اول خریف رو حساب میکردن الان هم اصطلاحا از اول خریف مبدا سال زراعیه ما یک سال به اصطلاح شمسی داریم یعنی سال متعارف زندگی داریم که اول بهاره یک سال آبی داریم سال آبی رو بعضی اول مهر می بعضی هم اول آبان همونایی که تو چارتی اول آبان میگیرن پس بنابر این یک سال به اصطلاح به لحاظ مجموعه مثلا طبیعت و بود به حساب میوه‌ها و درخت‌ها و, درخت و این‌ها اون رو از بهار میگیرن یک سالی هم به لحاظ سال آبی بود اون رو از خریف میگرفتن در هر دو شب و روز مساوی بود. ولذا در لغت عرب در هر دو کلمه معنی سال به کار. مثلا سی بهار درو گذشته یعنی سال یا سی پاییز در اینجا یعنی سال. خریف در اینجا معنی ساله. در لغت فارسی ما بهار رسم منای سال اما پاییز رسمی نیست. آن روز رسمه. مثلا سی بهار از عمر او گذشته یعنی سال. بهار رو به معنی سال در فارسی ما رسمه اما پاییز در فارسی ما ریشه نیست. و ما تین ذو خبال قال مایسی رو تینا گل میشه، نفس مناسبی نیست. حدیث شماره 43 خب اینا مرسل است تو اسفالشم خیلی مشكله تنبیه الخواطر از قال انس قال رسول الله از حدیث از خود زمان امثال مرحوم صدوق قبل از اینا ما ایده داشتیم که روایات اهل سنت رو از با یک احتیاطی میوردن که با رواست شیعه مخلوط نشه حالا اینشالله اگه یک فرصتی شد چون الان رواست زیاده وقت نمی کنیم این بحث انتقال احادیث اهل سنت به مسادر ما و کیفیت انتقال و این که در خیلی از این موارد انتقال همراه شده با قلط قلوت هایی یعنی احادیثی از ست الان احادیثی از در کتاب صدوق مثل یا غیر صدوق حتی از کتاب های کتاب بخاری هم هست. دفعه متاسفانه یا سندش خراب شده یا متنش یا هر دو که یکی از کارهایی که باید در این کتاب‌های جدید ما مثلا فرصان کسی میخواد جمال آهادیس بنویسه یکی یا مثلا جامال وسائل تحقیق بکنه یکی از کارهایی که خیلی خیلی مهمه مقداری از این روایات اهل سنت که در کتاب ما آمده این روایات مثلا در کتاب کافی زیاد نیست هست اما کمه در تحضیب و استفسار هست در تحضیب هست استفسار نه در تحضیب هست بازم کمه اما تو عمالی شیخ توسی نسبتا زیادتره با مثال میخوام بگم تو تفسیر ایشان تبیان زیاده و آخری در کتاب صدوق نسبتا زیاده حضرت کتب صدوقی که مثل خسال و عمالی و اینا نسبتا زیاده و خیلی هاشی ها خلل داره یا مطنب و این هم خوب نیست الان چاپ بشه مثلا زمان ما که بحث ارتباط‌های جهانی زیاد شده چه به درسه با عالم اسلامی چون کتاب وقتی به دست سنی‌ها رسید نگاه می‌کردن خب اونا نمی‌شناسن ایشون یه حدیث مثلا تو بخاریه اینا ما حدیث رو خرابش کردیم اسم راوی چه خراب کردیم متنش رو خراب کردیم خب واقعا به عقل ما نمی‌خردن دیگه توی این روزگاری که علم پیشرفت کرده ما هنوز مثلا با اون که کتاب عملی بوده اکتفا کردیم اینا خود این روایات اینها یک مقداری باعث کار بشه توی متون گاهی متونش با اونا فرق میکنه گاهی سندش با اونا فرق میکنه توی سندهای ما ضعف تز... آمده البته این خود این پدیده از ظاهره این ظاهره یا ای پدیده است از... یک علتی هم حتما داره که چرا این کار شده من فعلا وارد علتش و خودش اینو نمیشم چون جاش اینجا نیست مثلا همین روایت انس رو از کتاب درر منصور سیفی خوندی؟ اون روز اول که رواته درر المنثورمو من که همیشه را خوندین قال رسول الله لیلته اسری بی بله، قال اند، قال رسول الله، لیلت اصریه بی علاقامن یا مرر تا علاقامن، چیزی افتاده ازشکیه. یخمشون وجوه هم، البته این کتاب تمیل خاطر منسل آورده و از مساله خیلی متاختر ماست. خیلی اونقدر مهم میست که خرابیش بیاد. یخمشون وجود هم به ازفار هم، چون رو که ازفار هم به نهاست. هم از مثل بود. قوله <التحاج> جبرئيل من هاولا ها قال الذين يخط هاولا ها الذين يخطابون ها در روايات عامه آمده اومده بهترين راهش اینه که الان اگه بخويد مثلا مستز جل احاديث بنيسيم خير از این كه از تنبيه الخواص که یک ميراث مصننی كه از كتب شیعه از که نقل ميكنين مسادرش و متونش و اسانيدش و متون مختلفش هم از مصادر اهل سنت لا تو حاش ميره تو حاشيه بياريد حداقلش اینه که پشتارش نوردیم مثلا چون بگیم فریضه ما حفظ تراس شیعه است این حداقل با تو هامش بیاد این یه حداقل کاره وسیحه بازم در تنبیال خواصر قال جابر کن نام رسول الله فی هم اینم از روات مشهور اهل سنته نه این حالا نسخه اونیکی نیست اونی که خیلی مشهور نیست اما اینجوری روات بسیار مشهور اهل سنتی که در بخاری هم هست همون قصه‌ای که از فی قرآن بعد فرموده این دو نفر عذاب میشد مرعلا قبرن می و عذاب صاحبهم اخوندیم شده یکیشون به خاطر بولش به خاطر کانلای تن از زهار بول ایشون به خاطر هیغا این در اساسیش هست این جور چیزاره که ما میبینیم در حامشش از مصادر اهل سنت با وجوه مختلف نقل شده باز در جامعه اخبار مرحوم قمی داره قال نبی صلی الله علیه وسلم سلم ان عذاب القبر من النبی مساله قیلتن از هر مرحوم جامل اخبار یا مرجع حساب کتاب مسلسلات یا خایات یا المنائات تنل جنه الاعمال المنائات تنل جنه بله ایشون انصافا مرد مولایی است خیلی اطلاعات ما از زیاد نیست و دیروز دیدیم که یک حدیثی بود که در واقع به عینه در یک روایت دیگه بود و هیچ کم و زیاد نمیکرد بود این نشون میده که مرد واقعا دقیق نیست در بحث به اصطلاح روایات اما خب مسادرش ممکنه که الان در اختیار ما نباشه حدیث شماره چلو پنج هم مرسله حدیث شماره چلو از قطب راوردی فی دعواته باز از ابن عباس قال ازاب القرم یک سوسش از قیبته این در حدیث قبلی هم بود و تحبیر به سلس شاید بعدها روات کرده حدیث اون شماره چلو شیش هم مرسله حدیث چلو هفت هم در عدت دایی مرموم ابن فهر اینم مرسله که خداوند او ها اله داوود که گریه بکن بر گناهانش مثل زن بچه‌مرده اون وقت میگه برای کسانی که کسانی که الذین ناس و با اگر این مطلب درست باشه یعنی اگر این حدیث درست باشه که به این معنا دقیقاً این کله سنداً سنّی که الان گفتیم کجا بوده بلکه اصل لاقل مضموناً درست باشه که این مطلب رو خداوند به داوود فرموده این معناش اینه که این تشبیه قرآنی ایوه با احد لحم یکا اخیه این منزه انبیاء سابق هم سابقه داشته فقط در اینجا داره میتر در قرآن در اینجا داره الگین یک کلونه ناس به اگر این درست باشه از ما چون درستی سندی رو گاهی مراد میکنیم گاهی درستی مزمونی اگر این مزمون درست باشه که خداوند متعال به داوود چنین مطلبی رو فرموده این مهمش اینه که این تشریع قرآنی در انبیا سابقین هم بوده این نبوده که خاص این شریعت مقدس باشه باز حدیث شماره 48 انقص الرادی فی لو بل لو باب نوی النبی ارسلان اینها کتاب‌هایی است که برداشتن احادیث اهل سنت رو به اصطلاح هم جمورسرن از رسول الله کردن و این شده این کن مثلا مرحوم قصروآبندی این کار کرده فرض کن جناب آقای اسمش رو هم گفتیم امید جمال اخبار این کار کرده بعد از ایشون فرض کن مرحوم قطف این کار کرده تا زمان ما دیگه اسم نداریم تا زمان ما یک کتابی هست به نام نهج الفصاحه شاید باشیم که احادیث پیغمبر رو به حساب حروف هجایی داریم مرش هم ترجمه فارسیش متن عربیش یک مال یک شخصی کرده از نهجر فساهه کلمه خب این نهجر فساهه مؤذمش از جامعه سقیل سیوتیه <تصفيق> خود جامعه سقیل سیوتیم امینه چون جامعه سقیل سیوتی روایات و حسب و حروف احجایی اوورده خودشم هم داره از که از جامعه سقیل گرسن مؤذم کتاب جامعه سقیل سیوتیه برم یه طریقه ای بود که سابقا هم بود حالا هم بود دی یکی دیگه حالا یکی شد دیگه نداره این نیل عرف و اقوام هم تدخل و نارفی افواهیم و تخرج و من ادباره حالا این نمی‌دونیم آیا در شب معراج تیغمبر فرموندن یا تجسم عملی که در همین دنیا شده کشف قطاعی شده که اینها آتش از دهانشون خارج میشه از اون قسمت مرز و هم خارج داخل میشه از اون قسمت خارج میشه این نار رو تشبیه شده به قیبت تشبیه شبیه آتشه میسوونه تشبیه قیبت به آتش در مظامینره متعدد آمده ان قیبت ت کلل اینجا هم آمده. اینجا هم آمده تدخل و ناری افواه هم. یک به صلاحح مجموع روایات که آمده باقط نظر سندشون حدیث شماره چه۸ باز هم مستدرک 49 9 باز هم مسل بعده در لوبل لووا قالرائی تولع داخل احه را رژالت توقر از او شفاه هم به مغاریض به نار لبه های اونها رو با آتش این هم مال تجرب و عمله بله من هم قال الد این اختابونن ناسنس جیبلله. لبه های اونها این کنایه از این که تأثیری که در داری اینه پس تعبیر به آتش شده تعبیر به مغاریض منار نار شده تعبیر به بوی بد شده که سابقا به آاتش حدیثه شماره پنجام اونم باز مرسل باز قطف راوندی قاله من خطاب مؤمنه فکرنم آخرت نفسم متحمدن تا من این ثابت الان از این کتاب لیکن شاید از باب تشوی و همچنان که اگر قیبت کرد مثل گوشت مرده خورده مثلی که او رو کشته شخصیت او به اصطلاح امروزی ها آمرو و حیثیت او نه شخص او شخصیت او رو کشته با قیبت خوده شاید م بله زیاده رواید زیاده تشبیحاتش هم زیاده بله احتمال داره احتمال داره که مثلا حالا بعد در نتیجی گیری نهایی شاید مثلا کلام بعضی صحابه بوده مثلا احتمالا این که مثلا منبال مثال قیوت تنگذر وضوی شاید اصلش از آیشه بود چون از آیشه نهار کرده اونم که از آیشه نهار کرده به سطح قول اموزی ما استفهام انکاری میگه شما میگین اگر کسی گوشت پخت خورد وضوش باطل میشه باز وضو بگیره وقیبت که گوشت مردم بخوره وضو رو باطل نمیخونه احتمال داره من بخواستم در تیجین حالیش بردگر احتمال داره که بعض این مطالب مال صحابه بوده مال رسول الله میگه روز و غیات مثل خب شما میگید یا مثلا شما میگید میگه کسی غذا بخوره نمازش باطل میشه روزش باطل میشه یا از پیغنبر نرکت که مثلا گوشت درده ها نشده انداخت بیرون پس این روزه رو باطل میکنه این احتمال هست که یک نوع استنتاجی بوده یک دو مثلا استنباتی بوده یک نوع ترتیب آشاری بوده بر این که بار بکنن بر اون و الا این که یعکل و احدا کن لحمه اخیه میتن بیشتر میخوره به یک تعبیر عدبی بکنه. بعد ما انشالله اگر فرصه بود چا توضیح بدیم ما یک تعبیر ادبی داریم یک تعبیر قانونی داریم این که یک کل لحمه اخیه این تعبیر قانونی نیست اگر تعبیر قانونی باشه آثار اکت بشبار میشه مثل اگه قیبت کرد روزش باطلی میشه چون اکت انجام در این میشه آثار. تعبیر قانونی اما تعبیر ادبی در تعبیر ادبی کاری به ترتیب آثار نداره در تعبیر ادبی مهمترین قسمتی که محط نظره ایجاد دایی در طرف مقابل تحریک و تحرکشه مثلا میگه زیدون اسدون جاعمی اسدون در اینکه ایجاد خوف و رغبت و رهبت در طرف مقابل بکنه نه اینکه آثار در او بار بشه مثلا میگه حالا که اثر بگیره تو باورش مثلا شعر نمیشه تو باور با یه با اتاق. نه این مراد نیست مراد آثار نیست احتمال داره که مثلا بعضی از صحابه یا بعضی از علماء می آمدن اون تعبیر ادبی رو می بار قانونی بهش بدن خدا نفهم در یوه با حد کل لحمه هستی چطور عقل در روز مفتره پس اینجا که عقله به این تنزیل قرآنی بله اگر این تنزیل قرآنی یک تنزیل قانونی بود بله ولی ازا اگر ما باشیم متقواعده چون در قرآن تنزیل شده و تنزیل تنزیل ادبیه اگر روایتی هم آمد گفت که این موجب تفسیر میشه طبق قاعده باید بگیم یک نوع تنزیل ادبی در تفسیری نه تنزیل قانونی که اصطلاحا ما بهش میگیم تجسم عمل یا اصطلاحا بهش میگیم یک نوع تاکید یا اصطلاحا بهش میگیم یک نوع مثلا به این که وا و تحریک برای اینکه این کارو نکنه یا اصطلاح فقیم میگوییم مثلا یکره مثلا میگید استبااب داره که اگه غبت کرد مثلا اقضا بکنه. این استباب از تو این آیه در نمیاد. در حقیقت اگه اگر بخوایم از آیه در بیاریم یک جنبه های ادبی و جنبه های عاطفی بیش جنبه عاطفی نیست. چرا چون یوهب و لحیت و لحمه مع هم اون جنبه عاطفی رو در نظر گرفته. وقتی اگر آمد تو و ساین میشه جنبه عاطفی نه اینکه توفت رو سایم واقعا اینکه ماکان حدیث شماره پنجاه هم سند نداره لیکن میشه مثلا این هم یه نوع تنزیل ادبی باشه یه نوع تعبیر ادبی باشه که انما قتل نفسن یعنی که انما قتل شخصیت شخص رو مثلا فرض کن مخصوصا اگر مراتبی از قیبت که سعی میکنه آبوروی شخص رو در جامعه از بین ببره با یک بار غیبت این کار نمیشه سعی میکنه حیثیت این شخصو از بین ببره یعنی سعی میکنه این شخصو از جامعه جدا بکنه خب قوام انسان به زندگی اجتماعیه یعنی مدنیون به تعقل انسان مدنی قوام انسان به زندگی اجتماعیه اگر او از جامعه جدا شد کردم از مرده این کردم قاتل نفس تامعن بیمار از کنم که حدیث شماره 51 در عملی صدوه حدثا و اوی قال حدثنا علی ابن محمد ابن قطیبه این علی ابن محمد قطیبه توصیق نداره از مشایخ نیشابور بوده شاگرد فضل نشازان توصیق نداره منم هنوز نمیدونم مرحوم صدوق پلر رفته به نیشابور یا ایشون آمده این ابن قطیبی علی ابن محمد قطیبی هم بشین ایشون بگو ما آمده یک کمی حال بله سندی یک کمی مشکل داره بله حاضر تجازه ساعتی ما به حرفش علی محمد بن نه کسی استناد یعنی چند تا روایت از ایشون در کتاب کشی هست خاطر هاتون این باشه بله که اینم از فضل نق میکنه فی که اشاراتی فضل ایشون نه اینکه به ایشون به ایشون استناد کنه علی بن محمد بن قتیبه همدانه بن سلیمان که ظاهرا تو ذهن من ایشون نیشابوریه ان نوح بن شعیب كذلك ان محمد بن اسماعیل نه بعضی. ان صالح که ظاهرا صالح ابن عقبه باشه میشه من نام نو ثقته که ب... این محمد ابن اسماعیل وزی و صالح و القمه همین سند زیارت عاشورا هست به هر حال سند نقی نیست یک زوری بهش درست کرد حدیث مفصلی حدود دو صفحه است و حضرت مطالبی رو نه دو صفحه چیزی بیشتر که مثلا چطور به حتی به خدا اهانت کردن به انبیا اهانت کردن به امیر القومین چه اهانتایی کردن آخری اخری یکیشان واجبه در اولش راجع به غیبت داره که دیروز خوندیم دیگه امروز نمیخواد تکرار بزنیم. حدیث شماره 52 مرحوم شیخ مفید در کتاب اختصاص ارث کردیم به این کتاب مال شیخ مفید باشه احتمالاً مالی که از قمیاه حواله در بغداد و شیخونو نبر کرده احتمالش اینه اختصاص حالیشون به اسم شیخ مفید قال اسرع في جسد المؤمن من آکله اكله, آكله نوع مرض پوستی یا گوشتی است که در مثلا پوست یا گوش پیدا میشه و می‌خوره به رو هی گوش خالی میشه تبدیل به ناسور به استراغوشو میشه اسرع في جسد المؤمن من الاكله في حالا چون کتاب اختصاز هم نسبتش به شیخ مفید روشن نیست هم خود نسخه خیلی واضح نیست احتمالا جسد المؤمن نباشه چون قیبت در جسد المؤمن زهارا مؤمنه که قیبت میکنه این رو نمیشه احتمالا دین المؤمن باشه در هر حال به احتمال قوی این باید باشه و کیف این ر... بالا؟ بله این روایت در کتاب کافی حالا کافیشون فرمودی در همین کتاب جامل احادیس که درس من هست صفحه 536 این یعنی دو برگ بعد بقید شما از همین کتاب کافی رویت سکونی است قالا الغیبت و فی دین رجل المسلم منال آکلت فی جوفه باز جوف بهتر از لحمه جوف مراد معده امراض داخل مثل سرطان نسته جور مثل قده هایی که در به اصلاع معده پیدا میشه و های بدخین به اصلاع که موزید در سرطان و این سریع میگیره و نابود میکنه این به جوف بیشتر میخواه چون دین جنبه معنوی و غیبی انسانه به هر حال احتمالا نظر مرحوم اون کسی کتاب نوشته به همین حدیث بودن هم قار رسول الله داره چون سرکونی هم به رسول الله میشه دقت کردی؟ الغیبت و اسرع و فی جسد المؤمن من ال آکنت فی لحمه ظاهراً هر دو جاش خراب شده هم فی دین الرجل المسلم مهل آکلت فی جوفه این خوب بود خود هم اشاره میکنم و من تحجیب میکنم این حدیث در شماره باب اردونه که تقدمه داره خب این همون جمعه بود اما صفحه 536 چون عرض کردیم بعد از مرحوم صاحب وسائل بعضی از کسانی که جمع احادیث کردم مثل جامعه حادیث همون روش وسائل گرفته هم، روش وسائل این طوریه که احادیثی که سریح در قنوان باب آورده، اوبرده احادیثی که لابلای احادیثی دیگه هست، است مثلا نیم سطحش به باب رفت داره اونا رو با اشاره تقدم و یعتی این کاری بودی در وسائلی کرده بعدها اثنی این تقدم و یعتی ها رو مثلا تقدم چون در وسایل تقدم یعتی ده جلد فاصله داره مثلا در جلد یک میگه یعتی ما یدوله علیه عن اینکه واقعاً این جلد 16 ها مثلا 12 ده فاصله داره یه چیز وحشتناکی تقدم و یعتی وسایل نزا مرحومای برجدی اشکال داشتن که این تقدم و یعتی اینجوری نوشتن فایده نداره لذا اقتراح ایشان پیشنهاد ایشان این بود که اون تقدم و یعطیه ها رو روشن بکن کجاست یکی از فرهای های جواهر وسائل و با کتاب الجامع الا اینه اون تقدم در وسایل ابهام داره اما در کتاب الجامع الا حدیث رو بیان کرده اهم معیار اینه احادیسی که کلن به باب میخوره تو خود متن با برده احادیسی که یه قسمتش به باب میخوره تو تقدم و یعفی میاره مثلا حدیث کلان به یک باب دیگه مناسب اونجا میاره یه قسمتش به غیبت هم میخوره اونجا میشه تقدم یا یعفی این حدیث تقدم یا یعفی این یه نحوه است یا شما ممکن این راه هم را قبول نکنید این راهی که مرحوم آقای صاحب وسائل افتضال رفته و بعد هم مرحوم های برو جزی. شما بگید نه ما راه دیگه انتخاب بکنیم برای اینکه که اروات بیاریم و این هم دقیق بکنیم. مثلا ایشون شماره حدیث آخریش که زده 69. در خود مقدمه فهرست میشه 92 تا حدیث این 69 ها این ما به تفاوتش که 23 تا حدیث این تو تقدم و یعتیه ایشانه دیگه شماره بشنن زده دقیق کردیم اگه درس نمی‌گی مثلا در این باب ما 92 تا حدیث داریم این کار رو هم صاحب وسائل کرده صاحب وسائل رحمهم الله این جوریه مثلا در این باب چند تا حدیث داریم این که در این باب چند تا حدیث داریم این رو در خود وسائل نکرده صاحب وسائل یک تلخیسون سنه‌ای از کتاب وسائل خودش انجام داده که جبه فهرستی هم داره و خیلی هم مفید انصافا فهرست بسیار مفیدی است اسمش هم چیز چی اسم خاصی داره فهرست نیست اسم یک دیگه واسه شده حالا ملا امام منده چیه چا نه نه اگه وسایل چاپ آل البیت در این چاپ ربانی داریم مرحوم ربانی هم داره اولش مرحوم های ربانی اون کتاب اسا وسایل رو به حسب ابواب چاپ شده ای کتاب تقسیم کرده مثلا اون مقدارش مربوط به جلد اول جلد اوله عضو مقدارش جلد دوم جلد دومه اون دو تا که دو دقیق فهمیدید یکی از فواید اون کتاب فهرست خود صاحب چون خودش نمیشه مثلا مثلا الباب و سامن فيه سمانیت احادیث عدد زده میشه خود صاحب وسائل عدد زده جامعه آحادی همین کاری کرده عدد زده البته عددی رو که صاحب, و صاحب زده تو تقدمی عرفی باشه که نزده و اون عزیزشان فائده داره چون گایی میگه تو این با مثلا من هشت تا حدیث آوردم مراجعه 7 تا یا 9 تا داره اختلاف داره معلومه اشاره میکنه در شهرت داره که 8 تا اما الان که ما 27 هست. این هم یکی از نکاتی که در وصایل هست که خودش نوشته این مال اضافه نیست. اون فهرستی که در اول چاپ مرحوم ربانی هست، آقای ربانی ننویشه اون فهرست مال خود حساب وصایله. و اون فهرست فهرست نیست، خلاصه روایت باب. خیلی کتاب مفیدی اون کتاب. مثلا چند صفحه اجازه الباب فلان فی مثلا وجود به کذا، فی ثمانیت احادیث و في و بعضا يهر رتبه و في معارضون و, و سيعتي بیانها این توضیحاتی هم خودی ایشان داده. هر شما وقتی کتاب مرحوم آیرغبانی رو میخونید فهرست و که در نسخه ربانی هست مال خود صاحب وصاله. مثلا آیرغبانی نوشه صفحه فلان اون صفحهش مولا آیرغبانیه که در کتاب صفحه فلان میاد. اون فهرست رو خود صاحب وصاله میشه و فهرست نیست یه کتاب مستقلیه. خیلی هم فواید داره فوق العاده اون کاری که خود صاحبش سا... چون مروز به کار خودش دیگه من از کردم چند بار بحث کردم صاحب 20 سا... سال کتاب نوشته یک مراجعه ثانیی کرده از اول کتاب تا آخر یه حواشی داره یه مراجعه سوم هم داره بازم حواشی داره که واقعا ما ترجمه چون عمر ما برای کافی شیخ الاسلام خراسان بود تمام به استبل ما امور اجرای خراسان در ایشان بود لازم صفویه چون جزء درسه علمای لبنانه که به ایران اومده متصدی کارهای اجرایی هم بوده ایشان علاوه بر اینکه شیخ الاسلام و خراسان هم بوده این مقدار کاری اله غیر از کتاب‌های دیگر دیگری که نوشتن خود همین کتاب واحدش رو خیلی مراجعات کرد و یه فهرست مانندی که اسمی داره من لا حال الامام اگر نسخه ربانی پیشتون باشه اولش داره خود این کتاب رو مرحوم ربانی چاپ کرده که متأسفانه این چاپ اولش این نیست از این کتاب این فهرستی کارل بیگ داره خودشون نوشته و عنوان باب این فواید و نکاتی که از این نداره فقط عنوان باب آورده مگر اون باب طورانی بوده هست کنه بقیشه اون اولش آورده و این البته ای که از نقاط فرق بین نسخه مرحوم ربانی و این نسخه جیده البته این کتاب دومیه عذر آوردم من بهشون گفتم عذرش این بودی که این کتاب دومیه ربطی به وسائل نداره کتاب دومیه اون فرشته وسائل این نداره و بسیار نافع هم هست یعنی فقط فهرست نیست یک نکات فنی حدیثی و فقهی داره که در این مختصرشون بیان کرده واقعا لایسترما هم الان که قماکان این هم دقیقت میکنیم ما نمیخواستیم و این بحث بشی در از گاه میبینی شمارهی که در جامال احادیست در فهرست داده میگه 92 تا اینجا میشه 69 یه شماره نداره این 23 هاش بیس تو تقدم و یعتیه ولی هزا ممکنه شما بگیم برفض هم تقدم و یعنیتی مخواید شماره میداده که شما نوضع کامل میشه شماره دیگه نوضعیم پس برای این حدیث هم یک مقداری مشکل داره در مفتی که در اختصاص هست اما حدیثش بد نیست انصافه در کتاب سکونی هست بد نیست در کتاب تنبیه الخواتر حدیثی در رویانه ایسا مره و حدیث از کردم یک به پیغمبر نسبت داشت که دا دا دا به بنی عایشه هرچی میخوایم بگیم به هر حال چون نرفی میشه کنه اثبات میشه که دیروز تو بحث اصول متعرض شدیم حدیث معروفی است اساتید دا فراوان داره نسبتاً فراوانه من خیال می‌کردم حدیث شاذ مرسلی باشه بعد هم نه اساتیدان در میان مصادر اهل سنت سندهای متعددی داره خلاصش اینه که اینم شاید از اونونه باشه این این حدیث اینه که شاید نقد میکنه اهل منبران نه حضرت تو عیسی یک سگی در فهمان جیفه ای بود. حوالی این بودن چرا این بدبوس؟ حضرت فهمدند که حضرت ایسا فهمدند ما اشد بیا ز اسنانه چرا دندانهاش سفیده؟ یعنی همون که ما در زبان فارسی میگیم نصف پارلیوانه میگینه حضرت فهمدند اون سفته بدش نگیر میتونی خوبشی رو که درسته بوی بد داره. اما یک نکته مثبت هم داره ما اشد بیاز ز اسنانه که نه هم نه ها اجازت اخلاقی از دیگه جای بحثه حدیث شماره 154 علی بن ابراهیم در کتاب کافی عن محمد بن ایسا عن یونس بن عبدالرحمن واضحه دیگه عن عبدالرحمن بن سیابه یا سیابه الان من اسم زبط دقیقش رو ذهنم نیست قال سمعت ابا عبدالله الحسام یقول الرغبت ان تقول فی اخیک ما ستره الله علی. این روایت تقریبا یکی از روایات کلیدی است در بحث غیبت چون متصدی تعریف قیبت شده. اگه از واژه روز قبلی بیشتر های اصل حرمت و تجسم و اینها بود، این نه، این متعرض معنای غیبت. انت فی ما ستره الله عليه این عنوان رو این گرفته هر چی که مستور باشه بگیم چون از کردیم کل کلمه غیبت در حقیقت یک نوع قائب بودن درش محفوظه خوب دقت غیبت غیر از غیبته غیبت این قائب بودن غیبت اون کلامی مثل گفتن و گفتار غیبت مثل گفتنه غیبت مثل گفتاره اون کلامی که گفته میشه به کس ولی اسم مصدر که اشتباه باز می‌کنید غیبت رو درش یک نوع مستوری و قائبی خوابیده به ماددش هم این, این نمل کلام اون قائب بودن به لحاظ خود شخصه یعنی شخصی که الان حاضر نیست از این جهت کلام غیبته خوب دقیق کردیم یا غیبت بودن به لحاظ مستور بودن عیبه خوب اون عیب قائبه یه دفعه میشه به لحاظ غایب بودن شخص باشه کلامی که پشت سر انسان گفته میشه یه دفعه است به بلحاظ پشت سر نداره عیدی که مستوره عیدی رو که مستوره شاید مثلا به حسب اطلاع و جروش هم بگی یه عیدی داره کسی خبر نداره شما جلوش بگی طبق این تعریفی میشه قیبت دفت کردی؟ و کردیم ما سطره الله علی ولی ازا انس کردیم شما بعدم خواهد آمد مثلا در بعض از رباید داره که علغیبه ان چون انت... بتتكلم خلف الرجل این خلف الرجل بله و من ذکر من ذکر رجلا من به ما ببینید این روایت من خلفه نکتر برده رو غائب بودن شخص روشن شد این روایت نکتر برده رو قائب بودن عیب علغیبه ان تروله، فی آخریک ما ستره‌هالله علی خدا بر اون پنهان کرده تا از این سطره الله هم داره. نمی‌فرستم مثلاً یه ایبه جسمی داره، در بدنش مثلا که مثلا این بود خوب نیست. اما اینکه خودش پنهان کرده کاری انجام می‌دم نیست. ما ستره‌هالله علی و ام امر را ظاهروفی امریک ظاهره ظاهر مثل حدت اگر این حدت باشه یعنی تندی و عجله. ممکنه مثلا چیزی دیگه باشه مثلا هدوه باشه هدوه یعنی مثلا پشتش غوز داشته باشه بسیار فارس ولعجله ولقلا ولبهتان انتقون فی مالی سفی دقیق پرموندیم اینه که از روایات کلیدیس چون خیلی در کلمات فقاهای ما رو این کار شده چون الغیبتان انتقون فی اخی ما ستره الله علیه عنوان ما ستره الله اما الامر ظاهر چون ان خوندیم الله خوندین که ام سلمة آمد پیش آیشه آیشه به پیغمبر وقتی گرفت بیرون ام سلمة یا اون صفیه که مال خیبر بود وقتی گرفت بیرون پی... عایشه با دست اشاره کرد که مثلا مثلا این مثل خانوم قشنگ یه قد کوتاه قد مثلا خیلی قولمون مثل بگیم خیلی مثل خیلی مثلا خیلی بیچه مثلا اینجوری خاصی که پیغمبرشون فقط اخطصی تو قیبتون اخططها تو قیبت اون, اون کرد لذا این بحث هست که در اونجا خب این کتای قد رو ظاهره خب این کتای قد مثل من عجله مثل چطور شد پیغمبر فرقه که تو مثلا قیابشی گفت این غیبته اما در اینجا امام امر امروز ظاهر و فی مثل هده فدا خوب دقت فهم پس این روایت هم به لحاظ تفسیر غیبت محل کلام شده بین اصحاب ما هم به لحاظ اون روایت که از امه سلمه و عایشه نقل شده که یک امر ظاهری رو از ف... کد رسول الله پیغمبر فرمودن تو غیبتش کردی و همین امر ظاهر غیبت کردیم جمع بین اینها چطور میشه این بحث فقهیشو ان بعد از میکنم ما چون الان بنا شد که بحث روایی رو و جهات روایی رو متعرض بشیم بحث فقهی رو بذاریم برای بعد اما به لحاظ روایی این حدیثو مرحوم کلینی از علی بن ابراهیم استادش کرده اصل در کتاب کافی روایت فراوانی داریم و در غیر کافی که علی بن ابراهیم از محمد بن عیسیا نقل کرده این محمد بن ایسا یقطینیه ببینید این شرح تاریخی چون گاهی ما بعضی مسائل رو تکرار میکنیم برای شما حالت گفت ارتکاز پیدا بکنه یک شخصی بوده به نام یقطین این از دعوات بزرگ بنی عباسه مثلا زندگیش در راه دعوت حتی رفت به خراسان برای جنگ با به سوار همراهی با ابو مسلم برای نشره دعوت بنی عباس در خراسان این اولاد نسبتا متعددی داره بعضی از اینکه خودش تمام زندگیش رو توی دعوته بنی عباس اولادش با بنی علی بودن به خلاف پدرش معروفترش هم علی ابن یختینه که اسمش این زیاد چنده علی ابن یختین پسر ایشان البته بعضی, بعضی از علما رجال ما سعی کردن یختین رو بگن اشیعه بوده که قطعاً باطل نگا احتمال شواهد بسیار فراوانه مگر مرحوم تصری شو شاهد ذکر دیدی که از این تاریخ نگاه بکنه کاملا قطعی است که ایشان با اهل بیت نبوده و با بنی عباس بوده از بر... ارکانشون بوده اصلا زندگیش در راه اونا گذشته که ما بگیم اینا بزر... مثلا اشریان اهل بیت بوده نه بله بچه‌هاش شدن بچه معروفش علیب ابن یعقوبینه و ظاهرا هم دستگاه بنی عباس چونشون تقیه میکرده به احترام پدر مناسب وزارت اینا بشودن ولیکن در باصره با اهل بیت و با موسف من جفر سامولا علیه بوده که اونم حالا یه شرحی داره هم حیاتش هم زندگیش هم آثارش که فعلا جاش اینجا نیست یکی از فرزندانیشان یعبوبه که احتمالا ایشون هم شیعه است. یکی از فرزندان ایشان اوبیده که اونم احتمالا شیعه باشه به احتمال قوی و ابی فرزندی به نام ایسا داره عیسی ای سبن اوبید حالتا ایسا خیلی معروف نیست عبیده اسمش برده شده اما توی اینها بچه ایسا خیلی معروفه محمد ابن ایسا ابو جعفر محمد ابن ایسا که گاهی هم بهش یختینی میگن لازم اسناد به جد جدشون یختین پس اسم کامل ایشان محمد ابن ابن عبید ابن یختینه این اسم کامل ایشان ایشان نوه برادری علی ابن یختین میشه چون علی پسر یختینه و جد این برادر علی یعنی عبید پدرش نه جدش محمد بن ایسا ایشون از شخصیت های بزرگ بغداده در بغداد عنوان داشته شواهدی که ما داریم حاکیست که ایشان به ایران آمده حالا تا قومش که واضحه احتمال داره چون در آثار کشی هم از محمد بن ایسا هست شاید هم تا کش و سمرگن رفته بران شنید یه ایش خب محدل کلام بوده اجمالا مثل فضل بن شازم معترض بسیار مرد بزرگواری است من مثل ابی جعفر کان علازار و وثقه مرد بزرگواری ابن نوح دیگران راجع به ایشان خیلی تجلیل دارم. در قم چون این خیلی واضح شده من کم امروز توضیح بدم توضیح طولانی شو بده وقت می‌گذرونم یه توضیح اجمالی به اندازه‌ی بحث امروز در قم وقتی ایشان مقداری از آثار رو نقر کرده صافم و خود ما هم یک این شبهی در بعضی از آثار ایشان برای ما پیدا شده یعنی خالی از شبهی نیست بعضی از آثار ایشان حالا میخوام از اخوام چرا این شبهی در قومی ها در قم که ایشان آمده و آثارش پخش کرده یکی از آثار بسیار مهم ایشان که در قوم تأثیر گذار بود و محل کلام بود کتاب های یونسب نبد ایشونی که از راویه های بسیار مهم کتاب های یونوسی بن عبدالرحمن در قومن در آثار یونوس انسان احساس می‌کنه بعضی از جاها مشکل داره مثلا فکر ها رأیه یا احتمال بوده که مثلا کموزیات شده یا استنباط شخصیه در آثار یونوس مرحوم ابن الولی اعتمادش این بوده که این آثاری که محلش خدشه است، این در اون آثاری است که محمد ابن عیسا نقل کرده. خوب دقت بکنید. چون به این نرجیایی نمیشه نشد من ارجو می‌کنم اگر چیزی هست و تفصیلش رو چند روز با صحبت کردن من فعلا خیلی میخام موجز و فهرسوار ارجو کنم. ظاهرا اتهام رو, رو روی خود محمد ابن ایسا برده. به جای اینکه اتهام رو, رو روی یونس بزنه. ظاهرش اینطوره. ولزا آثار دیگری فرض کن اسماعیل ابن مرار هم اومده از یونس نقل کرده. آثار دیگری هم یعنی آثار یعنی روبات دیگری هم بودن که کتب یونس و تقوم نرودن منحصر محمد ابن ایسا نبوده ابنون ولید که شیخ القنبینه و واقعا مرد بزرگ است فوق الادجهی و قدره اعتقادش این بوده که اون آثار قابل قبوله خصوص روای آثار محمد بن ایسا رو اشکال میکنه یه افارت که شیخ توسیه هم داره نجاشه هم جای دیگه داره شیخ توسیه این تو نرکه قال ابن الولی کتب و یونس ابن عبدالرحمن علتیهیه به روایات كلها صحیحه معتم از اون ها الا ماینفرد و بی محمد ابن این علتیهیه به روایات مرادش اینه که من از که روایات در اون زمان اسطلاح هست مرادف با کلمه چاب در زمان ماست مثلا این کتاب یونس به روایات اسماعیل ابن مرار کتاب <تصفيق> <تصفيق> یونس به روایت فلان اینجوری راست میشه اینجوری چطور میگیم مثلا کتاب بهار چاپ قم چاپ بیروت مثلا چاپ فلانجا چاپ قدیم چاپ جدید در اون زمان میگفتن روایات به جای چاپ به خاطر به جای چاپ کلمه روایات رو به کار می‌بردن میگن کتاب یونس به روایت فلان مرقوم ابن الولید میگه کتب یونس یه به روایات خود دقت کنید یعنی نسخ متعدده قول ما ایموزی ها کاف های متعدد اینها قابل قبوله مگر اونهایی که فقط در کتاب نسخه محمد بنیسا هست روشن شده اینبار بار مراد اینه ای بار چی مگر اونهایی که در محمد بنیسا است، اونا رو ایشون بگه ما قبول نمی ها؟ شد من فکر میکنم که ایشان مثلا در کتاب یونس بوده اعتقاد داشته که این درست نیست خب دقیقا حالا جردش نمیخوام وارد بشم چون من از امروز سررس وارد صحبت کردم. لکی نخواسته به سر به سر یوروس بگزارم سر به سر به ما میگم مقرر اشتباه کرده. تمام را بدهم فایده خب وقتی جی برس می کردید در اون باشه یعنی نبات مهمی از اون باشه. هر شب ما در فی زیاد اونش نکاشه نمی جدی بیاد ان شاء متعرض میشیم. اشکار نداره روز بعد متعرض اون باید بررسی بشه. دقیق چون به این نرم گفته نشده من اشاره ورز میکنم. ها این که خب یه مقدار سابقا تشمید داشتن زودتر می فهمن و واضح میشه شه انشاءالله و اینجا می خواهم نمونه نشون بدم خدمتون دقت کردیش چی می خواهم کنم خب دقت بکنیم این اشکال این بوده اشکال ابن الولید این بوده صدوق هم با اشکال ابن الولید موافقت میکنه صدوق هم همین کارو کار استادش ابن الولید میکنه کنه حالا شد تحجباور باشه بر هم این آ شیخ توسی که بعد از ابن البلید صدوغه شیخ توسی از اون عبارت اینه فهمیده این معناش این که محمد ابن ایسا ضعیفه خب به قسمونه اون گفته محمد ابن ایسا تصریح میکنه همتی استثنائی در رجال ابن نبادر حکم هست بغدادی یون یونسی ضعیف یون شیخ طوسی از این عبارات فهمیده که مح... از این عبارد و عباد دیگری که در نماز حکمش تا این چطور فهمیده این معناش این است که محمد بن ایسا ضعیف اما نجاشی شیخ نجاشی و استاد ایشان ابن نوح اعتراض که حرف ابن نوح قابل قبول نیست ما حرف ابن نوح قبول نمی‌کنیم حالا اونا چیه مرادشون حرف اون آقا چیه؟ از خیلی توضیح داده چون ما فعلا یه قسمت اشکال ابن ولیدو مطرحش کنیم نه اشکال دوم که روی کتاب نواز الحکمه حالا تا اینجا روشن بشه. من همین این جور تاییدم. اشکال توی محمد ابن ایسان نیست. اشکال توی یونس هم نیست. اشکال محمد ابن عیسی ان یونسه. به خاطر اینه که میان طریقه قدما، طریقه خاصیه. اشکال اونه و از اجایب شاید تعجب بکنید. مرحوم صدوق، البته صدوق کلن در کتاب فقیه از یونس نبداله کم نقل کرده. کلن نقل که از یونس نبداله خیلی کم به غلاب کابی که خیلی فراوان این یکی. در کتاب فقیه متاسفانه سندش هم یونس نیورده. در مشیخه طریقش رو به یونس نبداله نقل کرده. لکن به حسب این نقلی که از استادش هست ظاهرا الان این نقل که استادش قبول داشته ظاهرش اینطوره اما نداره به هر حال این دو سه در کتاب فقیه از محمد ابن عیسی یختینی هم نقل میکنه کتاب فقیه کتاب اختیار ایشانه کتاب حجت ایشانه پس در کتاب فقیه از یونس نقل میکنه البته زیاد نه از محمد ابن عیسی هم نقل میکنه این در کتاب فقیه و دقت کنی؟ اما محمد ابن ایساعان یونس نقل میکنه. کدی دقت این صاحب. اما توی عمالی توی خیال، توی لال شرایع، محمد ابن ایساعان یونس نقل میکنه. بگات؟ اون جایی که کتاب حجت نیست نقل میکنه محمد ابن ایساعان یونس. اون جایی که کتاب هدیتون بین و بین الله اتباع الله استاده نقل میکنه. فنهذا اشتباه نشه این که مردم شیخ طوسی فهمیده حالا من اصرار خیلی مختصرش گفتم شرح طولانی داره به نظر ما شیخ طوسی رو یک ذهنیت خاصی بد فهمیده عبارت ابن ولید رو شاگرد ایشون شو نفهمیده روشن شد اجمال مطلب حالا آیه شیخ تفصیل تفصیلش باشه طلب تو دیگه وقت دیگه اینا روشن شدن این دقت صدوق رو دقت کردی در اون جایی که صحبت از حجت محمد ابن یسا ان نقل نمی کنه اما تو کتب دیگرش خصال شرایع ال محمد میسا ان یونس نقل میکنه روزان شب البته یک نکته من اینجا بگم توی بعضی موارد کتاب کافی هست علی ابن ابراهیم ابن یعنی هم محمد بن یزید را نبی زائده چون معظم نقلی که هست بدون ابیه ابی چند مورد محدوده ظاهرا ایشون مستقیم ازش نقل نمی کنه حالا ببینید اشکال شده چند دقیقه بذارید من مز... از خی میکنیم همین اجازیه لاغر همین حدیثو بخونید ببینید مرحوم علامه میخوام شما برم تو قرن مثلا 4م زمان ابن ولید 4م و سوم ببینید ابن ولید میامشون اذن بده از کلام واقعا نغدا در روایات واقعا فوق العاده است این روایت عبدالرحمن بن سیابه در کتاب یونس اینجور اومده الغیبه و قول فی اخیک ما ستره الله علیه و امل امر الظاهر فی مثل هدمه بل عجل فناء و بهتان ان قبول فی ما ليس فی هاژاتو صدق همین روایتی رو از عبدالرحمن بن سیاب آورده نهی یونس در کتاب امالی از نسخه حسن بن محبوب خوب دقت کنید شو بعدش مباحثه ازن و این نسخه هم صحیحه. در کتاب حسن ابن محبوب اینجور بوده انس عبد الرحمن بن صيابه انس صادق قال ان من اولا من داره خیلی عجیبه <تصفيق> نسخه کلیمی من نداره الغیبه فانتغو یک ظرافت هایی بود های بوده که اصلا در متن حدیث چون الان روشن شد ما خیال میکنیم غیبت یعنی ایب مستور این میگه نه این من نریبه یعنی غیبت فقط ایب مستور نیست شخص مستورم باید باشه دقیق بگی این نمه ان به انتقول فی اخیق ما ستره الله عليه و اما این سطر و عمل ام امر و ظاهر فی مثل حدت و اجل فلا این اصلا کلن تو نسخه این محبوب نیست زرافت کار روشه تو ولبهتان انتقول فی مالی سفی این نسخه حسن محبوبه راوی هم یکیست اونم عبدالرحمن از سیابه یعنی خودم هم خیال میکردم برکه خیلی دقت کردیم دیدیم خب واقعا معلوم شه مرحوم ابن ولید واقعا حدیث شناس بوده یعنی ایشون آمده نسخه یونس رو با نسخه حسن محبوب مقارنه کرده خب دقت کردیم چون تا این کارا در این کار تو حوضه ده در مقارنه ای که با نسخه حسن محبوب کرده معلوم شد نسخه حسن محبوب یک ذرافتی داره این یک فرد ا ثانی و عمل و و فی. امر و ظاهرفی چون اکتر امر ظاهر با اون روایت مشکل پیدا کرد که گفت قدش کتایه پیغمبر اون تو غیبت کردی که این منشه اختلاف علمای ما هم هست اینکه از اخت... مشکلات و ما همینه که اون روایت که از پیغمبر امر ظاهر رو گفت قیبت خب تو روایت سعیه داره که قیبت نیست. تو روایت عبدالعبان عبدالعب. عبدالعب سعیه به بعد شواهد. این یک نکته تا فردا بقیه بحث حدیثی رو در حد همین مقدار نه در باب یونس و محمد بن ایتا دقت کردین چی شد؟ این مشکل رو زد به محمد ابن ایتا ابدان ولید آمدید که دوتا نسخه, ای نسخه, نسخه یونوس. این نسخه هستن محرومی نسخه یونس این دوتا نسخه با هم که فرق دارن به جایی که یونس هم بکنه محمد بن ایتا